بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي وما توفيقي الا بالله عليه توكلت و أنيب اللهم أرنا الحق حقا فنسنبه والباطل باطلا فنجتنبه انکه علیه كل شيء قريب. الله تعالى في كتابه: "اننا عطيناك الكوثر ثلّل لربك ونهر، ان شانعك هو ابتر." در روز شهادت بانوی جهان اسلام و اصلا و الگوی همه زن در جهان بشریت فاطمه زهرا صدیقه کبرا قمع ابیها سلام الله علیه است. فکر میکنم مهمترین مسئلهی که در چنین ایامی میتوان تذکر داد و اون رو سرنشق زندگی خود به عنوان پیرو و شیعه این بانوی بزرگ و فرزندان گرامش قرار داد این است که بدانیم و بشناسیم عشق ورزیدن ما به این خاندان حب و مودت و محبت و ولایت نسبت به این بزرگواران از چه جهت است آیا فقط به عنوان یک تأثب مذهبی است؟ آیا فقط به عنوان یک اصل ارسی و خانوادگی ما عادت کرده ایم که در برابر این بزرگان ارز ادب نموده و به آنها عشق بورزیم یا این عشق و مودت و دلبستگی و تبعیت از آنها به واسطه تشخیص و درک و شناخت است امیرالمؤمنین علیه السلام به کمیل میفرمایند یا کمیل ما من حرکت الا وان تفیها محتاج الی معرفه به کمیل حرکت و تلاشی نیست فعلیت و اقدامی نیست مگر آنکه تو در تلاش و حرکت و فعلیت به معرفت و آگاهی نیازماندی روانشناسان میگویند برای هر کششی کوششی، کششی لازم است و برای هر کششی بینشی یعنی کوشش ما زمانی فعالیت ارزنده و مفید است که با بینشی ارزنده توان باشد و شاید به همین دلیل فرمودند الا اعمالو به نیات عمل حرکت و فعل است کار است ارزش کار و فعل را به نیت مشخص کرده هم. نیت نهوه فکر و نهوه اندیشه و نهوه شناخت است نسبت به اون کار و فعل لزم ما نسبت به این حرکت و تلاشمون یعنی این نوع از اقدام به طبعیت پیروی کردن دنبال راه این خاندان حرکت نمودن را باید با ای از شناخت و معرفت توأم کنیم حال به منظور بالا بردن و عظیم ترنمودن و گسترش شناختمون نسبت به عظمت و بزرگی و برتری این بزرگوار گوشههایی به اندازه درک و فهم خود از خواهم کرد فاطمه زهرا کیست که ما به او عشق بورزیم عشق ورزیدن گفتم فعلیت و حرکته این فعلیت و اقدام و حرکت معرفت و شناخت احتیاج داره شناختمون رو در جهت حرکت دنبال اونها بالا ببریم مثلما خدای جهان و قرآن که کتاب خدای جهان است اگر انگشت سهته بر روی کسی بگذارد و به عنوان تعیید از کسی اسم ببرد جای بحث و شبهی در خصوص عظمت و بزرگی آن کس باقی نخواهد ماند ببینیم قران فاطمه زهرا سلام الله علیها را چگونه به ما معرفی میکند همه مورخین نوشتند که به پیغمبر نسبت ابتر دادند یعنی نسل او قطع شده است پیغمبر تسر ندارد پس از مرگ او دنباله او و ادامه نسل او قطع شده و به چنین فردی در زبان عرب افتر میگویند. سوره نازل شد انا اعطینا سل کوسر ایپیان بر ما به تو کوسر عطا کردیم نکات دقیقی در این سوره نهفته شده اولا کلمه اعتا کار رفته چرا اعطا وقتی یک نعمتی یک عظمتی یک خیری به کسی داده شود معمولا با این کلمه بیان می شود علاوه بر این کوسر خیر کثیر چشمه جوشان منبع فیض بخش و عامل برکت و عامل ارشاد و هدایت کوسر به تو عطا کردیم این چیست که خداوند به این عامل هدایت و خیر کسی و نعمت فرازان اطلاق کرده علاوه بر این فصل لرب که هر انهر به شکرانه این نعمت که ما به تو داده این نماز بگذار و در راه خدا قربانی کن اینجا رو دقیق بشید لطفاً انایت بیشتری بفرمایید وقتی یک نعمت عظیم در اختیار ما قرار می‌گیرد، ما به شکرانه اون نعمت نماز میخوانیم قربانی می, می صدقه می دهیم و شکر نعمت به جا می آوریم هر قدر نعمت عظیم تر باشد عدای وظیفه و شکر هم عظیمتر خواهد شد نعمت برای کیست برای پیانبر افراد هم فرق می‌کنند. یک وقت شما یک مداد تراش و جایزه به یک بچه کلاس اول ابتدایی می دهید برای او یک جایزه هست اما اگر به دوره دبیرستان یک تراش و جایزه بدن ارزش نداره. ممکنه یک کتاب داستان رو به عنوان سله در اختیار دوره دبستان و راهنمایی بگذارند ولی به یک دانشجوی زبردست هیچگاه یک کتاب داستان جایزه نخواهند داد. یعنی باید فرد رو از نظر قدرت و صلاحیت در خصوص نعمتی که داده می شود در نظر گرفت نعمت رو خدا داده به چه فردی پیغمبر اسلام گل سر ثبت موجودات است کسیست که خود خدا می فرماید ای پیغمبر اگر تو نبودی من اصلا افلاک رو خلق نمی کردم. آفرینش از تو فیل وجود توست به چونین کسی خدا میفرماید شکر کن درو نماز بخوان قربانی کن به خاطر نعمت این عظمت کوسر رو میرساند. پیغمبر به اون عظمت با همه امتیازاتش خدا به اون میفرماید نعمتی به صداد این خیری در اختیار تو گذاشته ایم. چشمه جوشان و برکتی در اختیارتون حاضی شده که توی و پیغمبر با همه اون عظمت به خاطر این نعمت نماز بگذار و شطور قربانی کن ان نشان اکه و الابتر همانا دشمنتو دن بریده و نسلش بعد شده همه مفسرین نوشتند. این کوسر وجود مقدسه فاطمه زهره سلام الله علیه است که در نه هم در آیه در مبنای شانعکه و الابتر تایید کننده این معناست پس خداوند انقدر برای فاطمه زهره سلام الله علیه ها قائل است و این وجود مقدسه رو محترم و عظیم شمرده که اولا خیر کثیر خطاب کرده و ثانیان به بنده برجستش پیامبر می جا دارد در برابر و به خاطر چون نعمتی شکر به جا بیاری قربانی کنی این نعمت و این سلو جاگزه در خور چنین شخصیتی است. این یک دوم همه شماها قطعا خونده اید و شنیده اید که وقتی سران نفارا برای ماحه با پیغم آماده شدن خدا به پیغم بر به این مردم بگو وطال و ند و ابنانا و ابناعکننفسنا و نفسکن و نصفها انا و اع کن پیغم به سران نصار بگو و چههاتون جان خودتون رو بیاریید. زنهاتون رو بیارید من هم فرزندانم و جانم و زنم و زنانم رو خواهم آورد همه منتظرن این که خدا جان پیامبر فرزند پیامبر و زنی که در بیت پیغمبر ارزش خطاب داشته باشه میخواد کیه همه فردا دیدن زن جو ساطمه زهرا کس دیگه ای نبود که پیامبر در وسط امیر مؤمنین جلو فاطمه زهره پشت سر حسنه این در طرفین این پیغمبر به سوی میدان مداخله در حال حرکت خدا خطاب کرده و خدا چنین بیان فرموده که پیغمبر زنی که میخوای با خودت ببریم و عرفی کن همه منتجرن فاطمه زهره سلام الله علیه هست یعنی جز فاطمه در میان زنان کسی که ارزش و لیاقت چنین مقام پستی را داشته باشد که در میدان دعا و راز و ناز حاضر شود وجود ندارد دعای او مستجاب است و لذا برای مداخله فاطمه باید به میدان مداخله بیاید در خانه اگر کس است یک حرف بس است همین دو مورد در قرآن کریم در خصوص عظمت فاطمه زهرا سلام الله علیها از دید قرآن بس سراغ خود پیان پس از خدا و قرآن چهره و وجودی ارزنده تر از پیغمبر ما سراغ نداریم پیامبر فاطمه را چگونه معرفی می کند آیشه میگوید با اینکه یک اناد و حسادت خاصی با خدیجه و فرزندان خدیجه دارد در عین حال اعتراف می کند که پیغمبر بارها فرمود نسبت به الله اینالله هست تفاکه و که علم نساء العالمین ای فاتمه خدا تو رو گزیده و تاک گردانیده و تو رو نسبت به زنان جهانیان برتری بخشیده است این جمله عجیبه پیانبر اهل مبالغه نیست که بخواهد تو عارف با کسی بشته باشه بیان میکنه انالله الله یقزه بله قضا به فاتمه و یا رضا به غضب خدا از غذب فاطمه و رضای خدا به رضای فاطمه پیوند و بستگی پیدا میکنه چرا چون فاطمه جز رضای خدا چیزی نمیطلبت فاطمه جز برای خدا و در مسیر خدا به کسی قذب نمی نمیکنه و لذا خدا همین میفرماید ان الله هياق ذوال غضب فاطمه و يا رضا خدا از غضب قذب فاطمه غضبناک قذب و از خوشنودی و رضایت فاطمه خوشنود و راضی خواهد شد فاطمه تو دل عطون من آزاها آواهای فقط آزانی فاطمه پاره تن من و جگر گوشه من است آنکس که او را بیازارد مرا آزرده است آزار فاطمه آزار پیانبر و آزار پیانبر آزار خداست و قطعاً چون از ایت کننده ای اهل نار و جهنم کاهت بود معمولاً افراد دست چه کسانی رو میبوسن؟ بچه دست پدر و مادر دستور داریم، روایت داریم، وارد شده بچه دست پدر و مادر شاگرد دست استاد اما پیانبر بارها بر دستان فاطمه بوسه زده و فرموده هست عباها و صداها و حیع امه ابیها بارها پیانبر دست فاطمه رو بوسیده و فرموده تدرش خداش بشه اون مادر تدرشه هست. اون مادر دل سوزی میکنه مادر تذیرایی میکنه مادر نگهداری و نوازش و پرورش دهنده است گویا فاطمه این رسالتی رو عملی کرده و انجام داده است نقطه عجیب دیگر که هم به حدیث مربوط می شود و هم به وحی الهی را پیدا می کند حدیث قدسی مبینیم وقتی که آیه تطهیر نازل می شود خداوند می خواهد مسادیق این پاکان را مشخص کند و به ما بشناساند این تن و خمسه طیبه را از فاطمه زهرا شروع می کند مرکز دایره بیت رحمت رو فاطمه می نامد. فاطنتون و ابوها دعلاها و بنوها نمیفرماید پیغمبر و دخترش پیغمبر و نوهاش پیغمبر و دامادش این نکته داره نه تنها شیعه بلکه اهل سنت اکثرا نوشتن در جریان حدیث کسا که این جمله رو خدا بیان میکند جبرایل از طرف خدا چون معرفی میکند این اهل البیت کیانند که پاک و متحر و هستند چنین میگوید تون و ابوها بعلها و بنوها فاطمه و پدرش فاطمه و شوهرش فاطمه و فرزندانش پس از دید قرآن کریم چهره فاطمه زهرا مشخص از دید روایات پیغمبر و از دید شخص پیانبر فاطمه به عنوان یک الگو و اصوه و نمونه ارزنده انسانی و اسلامی به ما معرفی شده است بیم عامل دیگر عقل ما اندیشه ما قضاوت خود ما از عمل یک انسان شما معمولا به اندازه بینشتون روی انسانها غذابت میکنید. هر یک از ماها بر مبنای درک من بیاییم غذابت بشته باشیم ببینیم یک انسان با این همه بزرگی و قضمت و ویژگی جا ندارد که انسان ندرها دل بسپرد بلی تمام وجودش را در راه این بزرگان صدا کرده و خود را تو خاک زیر ها را تنتیای چشم خود قرار بده یک عبادت امام حسن مجتبا علیه السلام میفرماید مادرم به نماز ایستاد تا صبح داشت عباد نماز می خون به همسایه ها رو دعا می کرد پرسیدم مادر جون پس ناچی فرمود جارت جار سنمت دار همسایه ها دیگران بد خودمون مسئله گذشت و صداکاری سلمان فارسی میگوید: خدا می این قضیه به ما برسه میگه از کوچهی که خانه امیر در آن کوچه بود عبور میکردم، دیدم در خانه امیر باز بسته می شود تعجب کردم از پشت در صدا زدم بی بی جنیا شما هستید؟ فرمودند بله ارز کردم این عمل برای چیز فرمود سه روز علی رفته حاصل فدک را جمع کند این سه روز به خانه بر و من می دانم فقراب و مستمندان جمع شده هم. و علی همه درآمد رو به فقرا بخشیده میخواد با دست خالی به منزل برگرده شاد روش نمیشه من در و خانه رو باز میکنم تو کوچه رو نگاه میکنم اگر امیرالممنین در کوچه باشه به استقبالش برم و او رو وارد منزل کنم که یا علی من همراه تو هستم سلمان میگه در همین اصنا دیدم امیر پیدا شد اجازه خواستم که من هم وارد بشم وارد خونه شدم امیر المؤمنین پرسید فاطمه جان چیزی در خونه هست برای خوردن سرمود یا علی بچه این سرو چیزی نخوردن امیر المؤمنی اومد بیرون چیزی تهیه کنه به مقداد رسید اون چیز تهیه شده را هم به مقداد داد دیگه روش نشد وارد منزل بشه تو چه رفت که جبرایی نازل شده اون قضایا منظورم در این نقطه صدک مال فاطمه در اختیار امیر گذاشته بخشیده در آمد را سلس خود و پرزندانش در منزل چیزی نخوردن ولی در خانه را باز می کند که علی من همراه هستم. به استقالت آمدمم که تو در راه خدا و وظیفه امسانی اسلامی خود چنین اقدام کرده ای و گام در ای. در کدای دنیا شما چنین الگو و چنین استاد و نمونه ای رو می توانی پیدا کنید من با ندای بلند این فریاد رو میزنم و واقعا با اعتقاد به شما می گویم اگر در نکاتی در نظامی در فرقه ای و دسته ای پیدا کردید به ما معرفی کنید ما ریسمان ارادت این خاندان را از گردن درآورده و در خصوص دیگران به گردن خود بیان ولی گشتیم و پیدا نکردیم و پیدا نخواست کرد که چنین باشد از نظر خدا چنین معرفی شود از دید پیرانبر اینگونه به ما بشناسانند از نظر عمل اون عبادتش این عمل در طول زندگیش ببینید شما به تاریخ زندگیش نگاه کنید انچنانی که نقل شده در سال پنجم بعثت به دنیا آمده بهبوهه دوران حساس زندگی پیغمبر تبلیغ علنی پیغمبر شروع شده عذیتها رو شروع کردند این آزار از ابتدا در خانواده پیغمبر و در روحیه زهرا و زندگی او داره خودش رو نشون میده اندکی پا باز کرده دو سه ساله شده بدوه بازی کن از نظر ظاهری محاصره کردن در شعب عبی طالب سه سال در شعب عبی طالب در حساس ترین دوران بچگی در زیر این همه فشار قرار گرفته شعب عبی طالب شکسته شد اومدن بیرون، یه مرحله نفسی ظاهرا بکشن، خدیجه مادرش از دنیا میره، یک مرحله سشار دیگر، اینها همه هست، یه مقدار امکانات دیگه پیش بیاد، مسئله هجرت و میان مدینه، همه این مشکلات از ابتدای طفولیت تحمل کرده تحمل کرده حالا مرحله حساس انتخاب همسر و شروع یک زندگی جدیده اگر از نظر ظاهری شما بخواید تجربه و تحلیل کنید هر دختر معمولی و هر انسان عادی میگه حالا که پدرم در مدینه وجهه‌ای پیدا کرده شخصیت‌ها و دولت‌مندان و زرمندان و زورمندان به خواستگاری من میآیند برای جبران رنج گذشته یکی از اینها رو برگزینم ولی انتخاب فاطمه یک جوانی است که از نظر دنیایی هیچی نداره ولی از نظر معنوی جزو کسی برای جعفر است این شخصیت یک بانو رو در نظر هر انسان انسان دوست مشخص می سازد که او جز راه خدا انتخابی نداره و جز انتخ رضای خدا رضایتی به چیزی رضایت نمی‌دهد، اون هم تا چهر؟ با اون کیفیتی که می‌دانید زره را حضرت فروخته چون پول در استیارش نیست یه چیز مختصری تیعیه کرده یه پیراهن عروسی برای فاطمه زهرا انتخاب کردند. پیراهن رو پوشیده به سوی خانه شوهر حرکت میکنه صدایی به گوشش میرسه خوب دقیق میشه میبینه از یک زن میگه ای کاش من هم یه چنین پیراهنی میداشتم یه رخ دیدن بیبی بی دو آدم به اطرافیان سرمود و حجابی و پردهای دور من ایجاد کنید میخوام این پیراهن را بکنم چی شده صدایی شنیدم گویا کسی علاقه شدیدی به این پیراهن یا لباس من نشون میده لباس عروسانش را از تن میکنه و به آن دیگری میدهد و با لباس معمولی خود به خانه شوهر میآید آیا این گذشت و این فداکاری انسانیت و شخصیت یک انسان ارزنده را به روخ چه بکنیم که ما بر روی گنج های ایم ولی قافلیم که چه گنج ها در اختیار ماست آنکنان که باید ارز ادب و اونچنان که باید پیروی و طبعیت شاید نداشته باشیم. نمونه دیگر عمل این دانو در دوران کوتاه مر بعد از مرگ پیغمبر که از 28 سفر تا امروز 75 روز بیش نیست همین 75 روز به هرگاری این بانو رو برای همه ما مشخص خواهد کرد اولین نقطه حساس بعد از پیغمبر رهبری و پیشوائی و امامت جامعه را خطراتی تهدید میکرد پاکنه زهرات چه میکنه؟ از هر راهی که ممکن است استفاده میکنه اول اتمام حجت دست حسنین رو میگیرد میاد در خانه سران مهاجر و انصار در میزنه آیا از رسول خدا نشنیده بودید که علی خلیفه و جانشین پیامبر است آیا قضیه قدیر خم رو به همین زودی فراموش کردید چه میکنه فاطمه آیا منظور شوهر خود هست ممونهاش و بعد در همین حفت و پنج روز نشون خواهم داد که مسئله شوهر و پسر قمومت وحنیست مسئله اسلام و مسئله, مسئله مسیر اسلامی و زحمات پیغمبره میادی فریادها رو میزنه میبینه کسی گوش و حرف فاطمه زهرا میدهد یک حدیثی رو چندی قبل دیدم تا دو سه هفته قبل برخورد نکرده بودم از آقا امام صادق علیه السلام پرسیدم تو شد که مدینه در سال دوم حکومت یزید قتل عام شد امام فرمودن به خاطر ناله هایی که فاطمه زهرا زد و کسی اجابتش رو نکرد این بلا بر این مردم مقدر شد فریاد زد، دست حسنین رو گرفت، می در خانه مهاجر و انصار مردم چرا غافلید، چرا نمی فهمید؟ و چرا نمی که امروز چه بلایی به سر اسلام آوردن، با خانه نشین کردن علی، جامعه اسلامی و از حرکت و تکامل و پیشرفت باز داشتن، اما گوش ها کار این حرف نبود تصمیم گرفتن بیان در خانه فاطمه و امیر المؤمنین را به مسجد ببرند یک صحنه حساس در زندگی فاطمه زهرا و در تاریخ اسلام شروع شده ابن قطعیبه در کتاب علی امامت و سیاسه می نویسد و جا عمر معجماعتن الى بیت فاطمه با یه اومد در خانه فاطمه زهره و گفت در رو باز می کنید یا نه فاطمه زهر اومد پشت در اینجا مسئله چی مطرحه؟ مسئله حیث از خلیفه به حق پیغمبر فاطمه زهرا از پشت در ندا در داد تا من در این خانه هستم نمیگذارم دست شما به امامم و فیشوایم برسد صدا بلند کردن اگر در رو باز نکنی آتش میزنیم زنیم برخیها اعتراض کردم فاطمه در خانه است گفتند با فاطمه میگن در آتش زده شد این تکر رو از القبی رو میکنم. کنم وقتی در نیم سوخته رو با لگد زدن بی, بی پشت در به حالت نیم بی حوشی استاد وارد خانه شدن دست دراز کرد و دامن وارد شوندگان رو گرفت و فریاد میزد به سوی علی نروید دستور دادن که با نک خنجر علامه امینی نویسد با نک خنجر و تازیانه قنفز با تازیانه و خالد ابن ولید با خنجر به بانو حمله کردن که بیهوش افتاد و بچه صد شد به محضی که کشم باز کرد ببینید وظیف شناسی و ایمان به خدا و اعتقاد به مسیرش را به محضی که چشمش رو باز کرد دید اسنا در کنارشه پرسید اسنا علی رو کجا بردند نگفت گفت من منظور و هدفش حفظ امانش و راهش و هدفش پرسید علی رو کجا بردن می گفتم علی رو به مسجد بردن فرمود زیر بغل و منو بگیرید و منو به مسجد ببرید میگن یه وقت وارد مسجد شد دید امیرالمؤمنین رو پایین منبر نگه داشته ابو بک بالای منبر باش اینها رو ابن قطیبه در الامامت و سیاست از علمای بزرگ اهل سنت قبل از تبری این تاریخ رو نوشته در قرن سوم فوت کرده از مورخین خیلی قدیمیست می که لحظه ای که وارد شد دید شمشیر بالا سر امیر و گرفتن و میگن گن بیعت می کنی یا نه ساتمه زهرا فرمود امیر رو آزاد میکنید یا اینکه به کنار قبر بر بروم و نفرین کنم و بدانید که اگر من نفرین کنم مدینه اهلش رو فرو خواهد بود زیرا من از ناقه صالح کمتر نیستم یه وقتی دن آقا امیر المؤمنین سرش رو و به سلمان فرمود سلمان به ساتمه بگو نفرین نکند تا پیام امیر المؤمنین به فاطمه زهرا رسید فرمود چون دستور امیر المؤمنین است سکوت میکنم و وارد خانه شد فرمود دیگه از خانه بیرون نخواهم آمد و با این مردم تماس نخواهم گرفت زنان به ایادت فاطمه زهرا اومدن خطبش رو بخانید پرسیدن بیبی بی جون در چه حالی هستید این نمونه رو فقط از جهت شرح حال و کیفیت زندگی این بانو عرض می کنم تا اون جمله ابتدایی که اگر ما سرسپرده این خاندانین روشن شود به چه دلیل و به چه علت که ببینید اینها در مرحله عمل چگونه هستند زنها اومدن فرسیدن بی بی در چه حالید شما حضرت اون همه رنج ها رو کشیده پهلو شکسته است به حدی که ما حسن مجتبه علیه السلام نقل کردن از اون روز به بعد هر وقت مادرمون برای نماز ایستاد اول دست به کمرش می گرفت با همه این کیفیت اولین سخنی که میفرماید اینه چگونه است حال اون کسی که پیغمبرش از دنیا رفته و خلیفه پیغمبرش رو خان نشین و تنها میدیند با اقدام شما شطر اسلام حامله شد ولی به جای شیر از پستان این شطر خون خواهید دوشید و منتظر باشید که خونها از پستان این شطر حامله بدوشید نمیگه پهلوی من بچه من کیفیت من داره فریاد میزنه و آینده جامعه اسلامی را میبیند و عشق حسرت در خصوص بدبختی جامعه اسلامی بر دیرگان مبارکش جریان تیدا کند. ای زنهای مدینه تشبیل کنه تا ساده هاشون هم متوجه بشدن ای زنهای مدینه آیا گاریه گاری را به دون اصمی یا به کسی اگر گاری رو به دون اسب بستید یا سب قدرت حرکت ندارد و یا دنش کنده میشه ولی اگر گاری رو به کتف اسب بستید سب آرام آرام گاری رو به منزل و مقصد خواهد رسن شما گاری امت اسلامی را با کنار زدن امیر المؤمنین به دون اسب بستید و بدانید که این گاری حرکت نخواهد کرد و جامعه اسلامی به سر منزل مقصودش نخواهد رسید اینا کجا میگه تو بستر بیماری افتاده به حدی که از این پهلو به اون پهلو شدنش با دشواری انجام میگیرد ولی در تمام این لحظات متوجه همان مطلب اساسی است که مادا مردم از مسیری که پیامبر معین کرده جدا شوند که همه زحمات رو به هدر بدن جز این هم قمی نداشت. ثباتیات مثل عصر دیروزی آقا امیرالمؤمنین رو دعوت کرد پسر امو میخوام وصیت با شما بکنم حضرت اومدن بالا سرش نشستن بیوی بی وسیعتها رو مطرح کردند، وسیعتها رو گفتند سرانجام چشمانشون رو به چشم آقا دوخته و اشک از چشمانشون سرازیر شد امیرالمؤمنین پرسید فاطمه جون برای چه گریه میکنید؟ آیا برای جوانی خودتون؟ استفهام انکاریست برای مب... روشن کردن یه مطلب آیا برای جوانی خودتون آیا برای بچه های که در منزل فاطمه زهرا فرمود علی جان نه برای تنهایی تو در میان این مردم یعنی در تمام مراحل زندگی مخصوصاً در این هفتاد پنج روز حساس که حق را منزدی و خانه نشین می بیند او تماما می سوزد چگونه سوختنی مثل یک پروانه به گرد شمع امیر گشت اون گشت تا بال و پرش سوخت و به زمین افتاد پس ساتمه زهرا از نظر قرآن اونگونه به ما معرفی شده از نظر پیغمبر اسلام در روایات اون کنانی معرفی شده از نظر عمل خودش یکی مساله عبادته وقتی شب تا صبح به نماز می ایستد همسایگان رو دعا میکنه دیگران رو مورد نظر قرار میده وقتی مرحله بخشش و سخاوت مطرح میشه همه فقط رو در اختیار امیرالمؤمنین نهاده به دیگران بخشیده ولی باز با آغوش باز به استقبال می میرود از نظر عمل کرد خودش وزیف ها در نظر دارد اون چه که لازمه ابلاغ و اتمام حجت حجته نه تنها در دوران حیاتش حتی برای بعد از مرگ خودش هم اتمام حجت مشخص کرده در وصیتش میفرماید مرا مخفیانه به خاک بسپارید چرا امروز یک زنگی و یک عامل باشی برای جامعه انسانی باشد یک دختر پیام بر در میان مردم نهاد و او هم مدتی بسیار کوتاه بعد از پیام بر زندگی کرد قطر او هم مخفی و کسی نمیداند چرا چون به جه زمانش و به شرایط حاکم بر دورانش. معترض بود و این اعتراض را به عنوان یک اتمام حجت حتی برای بعد از مرگ خود هم باقی گذاشت آیا یک انسان که از دید خدا چنان باشد و پیغمبر چنین و در عمل این گونه جا ندارد که ما به آنها سر دوریم و با تمام وجودمون معترض باشیم که ما مفتخریم و خوشحالیم و شکر گذاریم که این نعمتها را شناخته ایم و در میان این همه افکار و عقاید و فرق و مذاهب شیعه به دنیا آمده ایم. به خود این دانوی بزرگ سوگن که اگر تمام عمر بر مبنای عقیدم بخوام شکر گزار این خاندان باشم، با فکر می کنم در قوال نعمتی که خدا ما را در او قرار داده است چیزی نخواهد بود از نظر فکر و درک و یک دو نمونه دیگه هم بخواهم از بکنم قنداغه امام حسن مجتبا رو به بغل گرفته میندازه بالا میندازه پایین میخواد بچه رو نوازش کنه در تو فکر رو ببینید سطح و بینش رو روش و عمل رو اشدعبا و که یا حسن وخلا ان الحق نمیاد گونداغه رو بالا پایین بکنه فقط مسئله این باشه کشم عبروت رو برم چه شکلیه اشوه با و خیا حسن شبیه پدرت باش حسن جانم وخلا ان الحق درسن. از دردن حق ریسمان رو بردار بندگی خدا رو بکن و با فرومایگان و, و پسها دوستی مدن بچه هاشو که وقتی میخواد بخوابونه نقمه لا اله الا الله سر میدهد این برکشه اون عملشه و اون امکاناتشه از جهت دیگر میگه وارد خانه شدم دیدم دستان مبارکش تاول زده و برخی از این تاول ترکیده حالت زخم به دست مبارکش داده چی شده چون با دست دست آس میکنه جو یا گندمی که در اختیارشه در این آسیابهای دستی کوچکی که کنار خانش درست کرده میریزه و با دست میشسته است و اینها رو میگردونه گاهی اینجوری زحمت میکشه یه که برای شب تهیه میکنه شب در خانه او رو یتیمی یا اسیر یا مسکینی می نوازد او شام و افطار خود را هم به اون دیگران می دهد و آیه نازل می شود و یت امونت تعاملا حد بهی مسکینا و یتیما و اسیرا اینا چیه؟ نمونه دارید نشون بدید؟ از کردم ما از نظر تأثب مذهبی و از نظر عرص خانوادگی نیست که میگوییم اش میبرزیم به این خاندان و به اینها سرسفرده از نظر درک و فکر و شناخت هرچه در زندگی این بزرگواران مطالعه میکنیم میبینیم جز بزرگی و فضیلت چیز دیگری نمیتوان پیدا کرد اما افسوس اما اسوس این اسوس در چیه؟ انسان رنج میبرد که قدر نعمت رو نشناسند و نشناسیم قدر عظمت شناخته نشود و نخواهیم که بشناسیم این همه بزرگی و عظمت اما چگونه با اونها عمل شد و چگونه با اونها برخورد کردن مخصوصاً در همین چند روزه بعد از مرگ پیغمبر که به روایتی هفتاد و روز بیشتر نبوده است همین هفتاد و پنج روز به نظر من برای هر انسانی که اندکی با تاریخ آشنا باشد اونقدر رنجآور است که شاید به زحمت با یاد اون خاطره لبخند در لبانش نقش ببندد از قوم عبده خدمت امام جواد علیه السلام رسیدم آقا امام حادی چار پنج سالشون بیشتر نبود توی اتاق مشغول بودن این مهمانان نقل می کنن. دیدیم یه دفعه آقا دستاشون گذاشتن روی زمین آقا امام حادی در سن پنج سالگی سر به سوی آسمان بلند کردن و از دیدگانشون عشق جاری شد پرسیدیم از امام جواد علیه السلام یعنی رسول الله این عمل آقازاده برای چیست؟ فرمودن از خودشون بپرسید، از آقا امام حادی پرسیدیم، یبنا رسول الله گریتون برای چیست؟ مگه چی اتفاق افتاده؟ فرمود در این لحظه بیاد مظلومیت مادرم زهرا افتادم و این اشکم برای مظلومیت مادرم هست. لذا همه اعمیت هار وقتی که بیاد فاطنه زهرا افتادن عش میریختن و ناله می یک چند روزی تاریخ نشون میده امام صادق علیه السلام در کوفه توقف بشتن یه روز اومدن خدمت امام صادق ارش کردن آقا امروز در بازار کوفه اتفاقی افتاد امام فرمودن چه بوده؟ فرموده ارش کردن یه زنی زنبیری به دست گرفته اومده در کوفه خرید بکنه روی پله بازار خود زمین، پهلوش به این سکو گیر کرد، ناخداغا بر مبنای ارغ تشیع، گویا بیاد رنج تعلوی فاطمه افتاد و گفت لعن الله ظالمیک یا فاطمه، معمورین ریختند و این زن رو به محکمه کشندن، میگن آقا امام صادق قدر متأثر شد به اطرافیان فرمود، بریم بیرون دعا کنیم که این علاق من فاطمه که بیرون فاطمه چون این گفته نجاتش رو از خدا بخواهیم بعد از لحظاتی دعای امام گویا یاد اجابت که رسیده این زن رو آزاد کردن خبر به امام صادق رسید امام سلهی معین کرد به شخصی داد گفت به این زن بدید و سلام مرا هم به او برسانید وقتی این پیام را به زن رسندن اون خوشحال شد که از خوشحالی میگن در پوست خود نمیگنجید که من مگه چه عملی کردم که مستحق درود امام شده هم. جمله اینجاست وقتی بیاد مظلومیت زهرا بر ظالمین زهرا لعن می کند، امام سله میفرستد و تایید می کند و این امر برای دعا رو برای خلاصی و او واجب و لازم میگرداند یعنی شیعه نمی تواند بیاد مظلومیت و رنجی که در این خاندان وارد شده نیفتد علامه امینی رحمت الله علیه یه محققه یه نویسنده زبردست یک روزخان معمولی و یک مداح عادی نیست میگوید از خدا عمر طولانی میخواهم شاگردانش مکس میکنند برای چه علامه امینی عمر رو برای چی میخواد محققه محقق نویسنده و اسلامشناس حقیقی میخواد در نسيب تحقیقاتش گامبردار برداره بعد از لحظاتی مکس با تعثر میفرماید برای اینکه در قضای فاطمه گریه کنم. علامه امینی محقق میگوید از خدا اختراف...